جلسه پنجه هم این پروعاتی که در مقابل نظریه حکیت علم تفسیری متوقفل از علم اجمالی مطرح شد اینها قرآنی ولو از بعضی از ها یا جماعتی از ها و اینکه علم تفسیری متوقفل از علم در پروعات قرآنی مطرح این ها مصنف که یکی از انها سلطه میخواد جواب دید فرقه به اداقه نزال من منت مبارد علیه المتطب ها المتطبه قیل مورد مبارد دیگه که این همیشه مخالفت میشه با یه قدم تفسیح. به علم تفصیلی در از علم اجمالی آدید گرفته میشه این ها رو هم فلا موارد به عهد امور علی سبیل من اجمالی اولی اینه که در تمام موارد اطراف شمهی محسوبه و مرور به علم, علم موضوع حکم زمانه در اطلاف شمایی محصول علم تفسیری باشه نه از علم تفسیری و علم جمالی. اگر در اطلاف شمایی محصول علم تفسیری بود اجتناب آجب میشه بلا با صرف حصول علم اجمالی بدون حصول علم تفسیری تنسوسی در کار نیست الابر علم تفسیری این کل علم اطراف شبهت محصوله یعنی مقرون بیدم اجمالی موضوع انگل حکم علم تفسیلی موضوع حکم یعنی شرط فنجز حکم در اطراف شبهه علم تفسیلی موضوع موضوع یعنی انگل حکم هست که مشهور در قبولش استراب دارن ولی واقعیتیه و اونی که کل شرط موضوع و کل موضوع شرط این نمیشه شما نقاشه کرد یعنی هر چیزی موضوع شرط و هر چیزی شرط موضوع در قبولش کلمات مشهور فقها و این در اضتراب که اینو بپذیرند بین کلیت یا نپذیرند در بعضی از کلمات مردوده تا نیم نمی‌دونیم ولی کلمات مشهور خالی از رده، ولی در قبولش هم استراب داره. این ما بپذیریم یا نپذیریم لذا به این شب و موضوع سنخیاتی هست، نه این و این قاعده رو برای تفسیر در یادگیری طوری گفتیم. کل موضوع شب و کل با موضوع قاعده آمنیه لذا میگه علم تفسیری موضوع حکم باشه یعنی شرط تنجز حکم باشه اگه علم تفسیری باشه بگیم اون حکم معلوم بل اجمال ما که نجاست در طرف این مرنجز میشه اگر علم تفسیری نداریم مرنجز میسه. موضوع حکم باشه یعنی شرط تنجز باشه برمی این نروازه با عدد اول اجتناب اما قول مکانهو خصوص بولن علم تفصیلی به بولیت باشه حضور اجتناب رو داره ولی اگر علم تفسیری به بولیت نداریم حضور اجتناب نداره احد و مما آیا وجود اجتناب داره یا نداره تقیی نظریه اول نداره فلمشتبه مشتبهان بولیت و نجاست و و تذکیت و غیره ما از این انواریات و ذاتیات فل مشتبهان، طاهران، واقع نهی این که ظاهران محکومت ها و واقعا اینا پاکند و همچنین موانع نماز چیزی ما داره که معلوم به تفسیم باشه معلوم به اجمال مانیت ندنه و کذا المان و لسلات و ول حدث صدور او تفصیلن نزات مشخص و مکلب انخواست اگه حدثی از زید مشخص سر بزنه محکوم محقصیت و خود این شخصم ولی اگه باید دو نفر مردد باشه، حدیث ثابت نیست هر معموم و امام متطهران فی واجبه. لذا احدی ما به دیگری میتونه اقتدا کنه. ما میکنه؟ بعدی زمانی می‌تونه مشروطی که تعهدی موجوده تعهدی راه انجام بده. وقتی موارد حالا مثال نزد خیلیه خیلی به دف دو تا سالی که آورده در اهتمام تعهدیه برای نماز. ولی خب نوعی که تعهدی باشه موضوع تعهدی میشه. در بعضی از شروط خیلی ولی بعضی هم مثل هشت صفر تا 5 باشه. هر پس نخ باشه. چرت و باشه. یعنی اون موضوع... یعنی میگن این حس برای چیه؟ یعنی اون چیزی که موضوع از ارتفاع بدنو خارج می‌کنه، اون شرط موضوع اما بواسطه در حضور، قره میگه چه اشکالی داره؟ حالا اینا فاصله بیاد. شارل میگه نباید فاصله بیاد. اینا رو شرط‌های تعهدی میگن. یعنی عقلای اینا رو نمیپذیرن. یا درش تردید دارن، یا شرط دارن، یا تعهدن نمیپذیرن. فکرشو شعار میگه این قضيه ما تا كيشو نميديم يا ديگه بحث خلافش داريم خب ما اومده علم تعمد ما گفت فقط علم تفصيلي اگه باشه این ثابت اگه علم داشته باشه ثابت خوب خب بحث خلافه و البته وقالا در مواد اجمالي هم یه چیزی براش ثابت تعبل میشه از مورد اولی یک راه حلیه که از اون مسائل هشتا دومی و سه رو حل میکن یعنی مسئله مشتبهین رو با اعتماد اون دوتا رو حل میکنه. در این وجه علم دخیل در موضوع. یعنی موضوع ما واقع بول نیست واقع نجاست نیست واقع حدث نیست حدث معلوم ونم نه هر علمی معلوم به تفصیل نجس و قول معلوم به لا مطلق البول و مطلب مطلق مطلق البول المعلوم ولو اجمالا اینم نیست قول معلوم به تفصیل ولی مطلب بول نجس نیست بول معلوم به اجمال هم نجس نیست لذا اگر علم تفسیری معخوض در به موضوع باشه که الان فرض این راحت اول همینه حصول علم اجمالی لغو و موثره در چیزی نیست لذا موضوع شبیه یک موضوع محدده وقتی موضوع محدد باشه سر سعب و دیگر تعبدیات دریا و این موضوع وقتی علم درش دخیل باشه بعضی از موارد به نهو ترکیبه بعضی از موارد به نهو تقیید اینو تو صفحه دویست و یازده مطالعه کنید تا بعدا توضیحش تر باشه این علم ران دخیل جزء موضوع خود از موضوع یعنی شرطه اونم درجه خاصی از علم که علم تفصیلیه علم اجمالی میتونه موثر نباشه ایشون کردیم دیگه حکمش این حکمشاره مطرد بر ذات و شی نیست بر واقعش نیست اگه معلوم به تفصیل باشه بود مطرد فرض دیگه فرض اولین فرض میکنه که این اجاست برا واقع بول نیست برا بول معلوم به تفصیل مطلب بول نجیست نیست بول معلوم به لجمال هم نجیست نیست چش کاریدن که این حضور بزنه چش کاریدن نه همش نه همش نه شعاره بعضی از موارد میگه این موضوع مقید به علم یا مرکب با علم اگه بگه چه شکالي داره ما م تاب نیستیم بعضی از موضوعات رو مقید به علم تفسیلي کرده اه علم تف تب... خوب هدث جنابت اینطور قنت این روایات ا مراجعکنهم دیي از شخص خاصی باید باشه اینطوری نیست که هوایی بگیم کلی حدث در کاره اما در استصاب کلی میگه ما استصاب کلی حدث اون به درد ما ما حدث کلی نداریم و مفاهیم مفاهم فلسفیه که بگیم کلی شو داریم اگه تشخص در این ذات داره حکمه به حدث میشه تشخص در ذات نداره حدثی در کار نیست کاری به کلی نداره استقراب نداره استیحاش هم نداره بلیدم نیست روایات هم داره که میشه موضوع مقاید به علم تفسیری باشه اگه شما علم تفسیری داشتی اصابت نیست این یک را این را هست یقین ما رو به موقع تفسیری هست نیست که ما مخالط یقین داریم که یه خود اومد من یا امان جنوب هست این را ببینیم اون فایده ندار دیگه شما بگی اهده و ما محدثه فایده نداره یه ثابت نمیشه حدث مال شخصی که معلوم باش از کی بوده ما همینی ما خواهیم بگیم دو هفته همینه بگیم حدث مال شخصی که ما بشناسیم اینه اگه مردد شد حدث بین دو نفر برا هیچ کدام ثابت نیست یه کی؟ ببین بناس حدث حکم شرعی باشه شاره میگه این حدث اگه از ذات مشخصی سر زن محقب اگه از ذات مشخصی سر نزنه تحقیق نداره چه اشکالی داره احکام بگه اعتباری نیست شاره این حول اینطوری این ای اعتبار کرد چرا ماج زور بزنیم بیام همه رو مهتس حساب کنیم چه فرقی برای خدا داره حالا هر دو مهتس باشن یا هیچ کدام نباشن از خدا چیزی کم میشه احکام اعتباریه احکام اعتباری به همینه بعضی از موارد اعتبار میشه بعضی از موارد اعتبار نمیشه ظاهر قضیه اینه که این مال ذات شخصه مثل ولایت بر پدر این مثالها ها رو اگه این مراجعه کنن میبین. ولایت مال این زاته اگه مردد باشه بین چند نفر ولایت ثابت نمیشه ما امر داره بین که ولایت مال مادره یا مال عمو چون پدرش از دنیا رفته برای کدومش ثابت میشه برای هیچ بودن برای هیچ ثابت نمیشه امر روایت هم داره مول به حاکم شر اگه ثابت میشد که میگه مادرش باشه یا عموش باشه دیگه داریم نسب داریم مفاد این قول من ترویج میکنم نظیر داریم منتها ای به این بحث اینه که قبلا کسی نگفته ما نمیتونیم بپذیریم الان همین مظل رو میگفت تو هوا میپریدن میگرفتن مشکل ما این نایینیت زنده نیست بگیم اون بگه آین بپذیرن استقراب نداره یه واقعیت خرقیه میانبوره و الا خود سید در مسئله سوم و چهارم دو تا فرس های هم داره ظاهرا دیگه میگه قص بر هیچ کدام جای واجب نیست از اون بر این بوهنی که خدا نکن بعد برای راهحلش تنها چیزی که میارن میگن هر دست دیگری محل ابتدای من نیست نسبت به قصدش ولی در اعتمام اینطوریه طوریه خب اینم استحصان مادرین ولی واقعا اینطور نیست که اگه این حدث ثابت قصده میخواد اگه ثابت نیست اعتمام که را جائع نباشی حال بحث همینه الان یعنی مشکل ما همینه پله اوله که ما میخوایم بگیم حدث متقوم به مشخصه در موارد تردد بین دو نفر حدث نیست چه اشکالی داره از این موبرد فقهای ما اینطور فتحا بدم شما ها اینطور فتحا بدم عهد و همای محدث داریم این شون میگن علم تفسیری داریم به اینکه که عهد و این اولی کنان هست این شون نیست حالا باز بحث کنید شاید کسی نظریه نپذید همون نظریه متعارف رو بپذیرید نظریه شیخ رو پذید. ما مزدود نمی کنیم که را ولی حالا این بحث مطرحه. ولی یعنی از كلمه خارج از باب میمانی خارج میشه. یعنی. جزاتی ذاتیات خارجه. اگه به تفصیلی reference شه، ذاتیات گفتیم خارجه این آیات اگه تفسیر بشه خیلی خوب میشه آیات خیلی مهم برای فکر اگه تفسیر بشه تو زهنها منققه بشه طول میکشه یعنی یعنی طول میکشه یک مطرق برای انسان هضم بشه این زودی ها نمیشه ما بعدی از ممایت غذای سنگین میخوریم میبینی تا فردا پس پردا معده درگیره مثل که که میخورن یا غذاهای نزدیکی میاد محرم و سفر که میشه مردم میخوان خیرات کنن تمام روغن گندیده خراب فاسد میفروشن افرادم فودام پای میخورن میخرن میزنن به غذا بعد از دهه محرم دکترها شروع میشه یعنی هیات ها منتظر میشه به منتقضین زنی این عاشق از عدم ایمان مردم. نظریه میتون میدن روغنهای فاسد و برنج بیکیفیت و چیزهایی بدن پای نداری اعتباری امور اعتباری دست معتبرشه معتبر میتونه بگه اگه حده بعد مرحوم آقای حکیم این آورده متنشم آورده فرموده متفقه به ذات این است محقق خراسانی هم در حاشیه دوررش آورده نمی کرده وقتشم نکرده حالا اینا چرا رد نمیکنن چون ایشون خب به در مقابل سید یزدی ولی خودش هم محمد کازمه ولی اون محمد کازمی از این خراسانیه اون به فقر معروفتر بوده تا خونده خراسانی ازا نمی چیزی بگه. مجبور رد نکنه ولی مدفع را بود عمرتو بو برا راحت این یه مقدار نیاز به تنقیل داره که مصنف به این تعبیر ها بوده از زانی در حکم ظاهری فی حق کل اهدین نافذن واقعا فی حق آخر حکم ظاهری دیگری واقعا در حق من اگر امام جماعت علم به نجاست لباسش نداره علم به حدث خودش نداره علم به اینجه فلانمانه موجود یا فنا شرط مفقوده این نمیدونه ظاهرا نماز خودش پیش خودش محکوم صحت این صحت ظاهری اون برا ما کافی که بتونم اختلاف کنید دیگه لازم نیست بهش بگیم لباس خونیه یا نجسه یا شما بودو نگرفتی امثالی من برا خودش صحیحه حکم ظاهری فی حق کل اهدن نافذن واقعا فی حق الاخر به این یقان این نمنکانت سلاته مثلا به حسب ظاهر صحیحتن اندنقصهی فلیل آخره انیردت با علیه ها آثار سهت الواقعی راسته نیست بهش بگیم شما وزو نگرفته بودی یعنی داریم نماز میخونی بعدی از مواردونی امام جماعت به جای خات داره جه همونه هی hey, داد میزن بابا به تو چه ربچی داره عوام ناس عوام زدگیی که آخوندان گرفتارش میشن <تصفيق> یه بار مرموم های برسیت یادش دفته بود نمازو جه می میکن یا آخوند برازه هی کوش سرش هی میگفت که لا تجمه هم بابا یعنی حفظ تشهی و قابد هم کش تکلیف ندار وقتی نمیدونه تکلیف نداره لازم نیست اصلا من علم دارم که وضو نداره برای معلوم داره امومد میکنه یا لباسش نزیسه خودم هم میتونم کنم حکم ظاهری دیگری واقعا در حکم من نافذه و این رو اگه کسی بخواد حلش کنه به همین نحنی داره میگه خیلی از مسائل هم میشه یعنی واقعا این مبنا رو کسی بتونه تنقیش کنه که خود مصنف قایل نیست به نظریه یه یوزو علاوه تمام بدی ها مسئله که از فروعات آورده و قاعلا به اینکه این را حد دوم از مسائل رو حل میکنه از اون تا. 6 تا رو حل میکنه دو تاش رو اولی هست که 6 تا دومی حل میکنه <تصفيق> حالا ایشون اینطور داره میگه نیاز به تفسیر نداره و این امرسانی رو تو صفحه 212 نوشتیم تبدل موضوع حکم واقعی به حکم ظاهری موضوع حکم واقعی با یک حکم ظاهری متبدل میشه اگر امام میدونست لباسش نزیسته خب نمیدونست بخونه و یا نمیدونه میتونه با اون لباس نماز بخونه برای امام سیده عنوانی که براش نوشتیم تبدل موضوع حکم واقعی به حکم ظاهری به این عنوان یعنی حکم ظاهری در حقه هر شخصی نافذ واقعا در حقه دیگه وقت اوزه ها و شیخ و محدقی اینه. در فباعد جند ثوم صفحه هشتاز و چهار این وضع توضیح داده مفصلم توضیح داده به ان نهازه الامور توجه با تبدل موضوع موضوع, موضوع, موضوع اما ام ام تبدلن واقعی اما ام تبدلن ظاهری این اینها میگه یه موجب تبدل موضوع میشه موضوع, موضوع عوض میشه موضوع کلان عوض میشه در این موارد یعنی اگر بناباشه حکم ظاهری در حق شخصی واقعا در حق من نافذ باشه یعنی موضوع عوض میشه یعنی برای من شرط این بود که شخصی امام باشه که لباسش نجس نباشه ولی ادهان چون خودش نمیدونه اجاست رو بهش علم نداره علم تفسیهی بهش نداره در این موارد موضوع به من هم عوض میشه لازم دیگه شرطیت نداره تحارت لباس امام برای من شرطیت نداره ولی اگر امام میدونست برای من شرطیت داره اون الان نمیدونه شرکیت نداره اینطوری توضیح داده یا تبدل واقعی در صورت طورت یا تبدل ظاهری و تفصیلم داده نسبت به مثالهایی که مصنف آورده بود در اون هشت و ها زد جواب حالا کلمات ناینی رو خود مراجعه کنید من دیگه ننوشتم فقط آدرس دادن این صفحه هشتارو چهارو اشتارو پنج اشتارو چهارو از اعرب شاره گفته اگر نجس بود نجس هم یک چیز ذاتیه نجسی که امام تشخیص بده. چون هر اینو دو دو که اگر نجس بود نجس به این معنا که خود امام تشخیص بده این نجسته نرمال مثلا اعتماد اثبات داره نداره. آره واقعا ت벌 موجود رخ داده یا دفع مشخص بوده که منوز علم ببین تهارت لباس امام بر ما شرطه. علیا چون ما اون پلیشته میدونه که اعتیاد نداره. موضوع عوض شد یعنی یه شرطی بنا بود باشه دیگه شرط هر ضمنی در باز چه نحوی حفظ شود این شرط. آیا مخصوص به ام امام هم شده یا نشده هستند؟ اما که یعنی مصنف مطلقا داره فرض میگیره. مساله رو ترخی میدونه. اصلا میگیم ترخی نیست. فرض میگیم این طور باشه. فرضی گرفته. بعضی هم مدن گفتن نه فرضی نیست. قائل شده مطلقا وارد شده ولی ما تفصیل دادیم یه تفصیلی که قبلا گفتیم انجام میه نسبت به نجاست لباسش اشکال نداره و نسبت به حدث امام نمیتونه اگه من یقین دارم نماز از خواب پا اومد در نماز میکنه نمیتونم اشتباه کنم توسل موضوع بودن اینجا نیست اصلا یعنی باز موضوع تغییر نمیکنه بردارم که فادات فقط نمی‌تفاوت باشه چون موضوع من نداره. اینجا موضوعی نبوده. موضوع هم موضوع موضوع یعنی چی؟ این که این شرطی که شما این شرط هیچ شرط دیگه. بله. این شرط طهارت, و طهارت برای واقعا بوده و <تصفح> بوده. از دار شاره بوده. حالا واقعاً نبوده نظر من نبوده. من نه شروط در دو بسم دیگه. بعضی ازش شروط واقعی واقعا واقعاً چه بدونه چه ندونه. مثل هدرس مثل قبله و امسانند. یعنی چه مانه واقعی باشه چه شرط واقعی باشه. ولی بعضی از موارد شروط ظاهری و علمیه یعنی شرطیتش برای امام در صورتی که علم داشته باشه وقتی علم نداره شرطیت هم نداره، مانعیت هم نداره. علاوه من میدونم برای امام مشکل نداره. صدا وقتی امام داره نماز میخونه، اول به که خون درش هست یا نجسه، ولو اون نجاستش به نجاست حیض باشه خاصی نداره تبعیانه چون شرطی ظاهری بوده علمی بوده ظخی بوده معفو دیگه از دیگه برای این بوده ثبات الان من که علم دارم به اینکه این خب پس حتما دیگه تعبدی موجود موضوع. این شرط چجوری عرض شده در لسان شاله؟ آیا گفته تو باید بدانی که این طاهره، یه گفته نه، امام اگر می‌دونه طاهره که باید می‌کنه این شرط دیگه عرض شده. آیا طهارت اون رو کرده به خود علم امام یا معلوک کرده به علم من به طاهره؟ که ما به عبارت موضوع عوض شد، که هر شد چیزی دیگه شد. از اول, نه. از اول از اول این شرط اینطور بود که اگر امام میدونه که باید می‌کنه، از اول شرط همینطور بود. شرط عوض نشد این برشت. یعنی تسامح از انوانیه که ناینی نا و خدا خدا بفرسته. خود هم شده. <تصفيق> حالا میشه تعدیلش کرد. یعنی میشه نفیش کرد، میشه اثبات ولی میشه تعدیل کرد. علاکو الله قرض نایینی در تفسیر بیان مصنفی تبدل موضوع. یه حکم ظاهری میاد اون موضوع واقعی رو عوض میکنن بنابراین لباسش پاک باشه حالا که نمیدونه برای ما مانعیت نداری برای ما دیگه مانعیت نداره مانعیت در خود اون شخص میدونه یعنی مزد به جماعت نیست این رو از دو تا طریق میشه انسان بحث یکی اینکه این مزد به نماز خود امام هست یا نیست یکی بحثه نماز ما هم گرفت به ما نداری یکی ای مزد به جماعت باشه این ها جماعت نیست هستند یعنی نجاست لباس ما مظهر به جماعت نیست ولی مهدس بودنش مظهر به جماعت نه دونو شرطه ما اونطوری بحث میکنیم، ولی حالا خود مصنف و محفظ نایدی اینو به تحت اینو نونا و خاضر جوابیت فرر و علیه فروقاتون عدیدتون فرقیه فرواز زیادی برش متنبته میشه بعض این مواند اختلاف دو نفر داره ما میکنه مجتهد یکی داره میگه باید به مازی باشه عربی باشه اون یه جه میگه نه نازم نیست کنه یه با هم معامله بکنن یه معامله کنن شخص مجتهد یه قائل به تحارت قساله است یه شخص دیه قائل به نجاست قساله است اون شخص میتونه به این شخص اختدار کنه به امثال این از دیگه در این موارد که اختلاف بین دو نفر هست از نظر اجتهادی یا تقلیدی ما کار کنیم نظر امام اینه که جلسی استراحت نمیخواد وجوبی نداره عملا هم اجرا نمیکنه. بعد از سجده جس سنیا پا میشه حالا من میتونم به اشت یا نه یا قائل به شهادت سالسه نیست و عملن هم در ازان اقامه یا قایل حتی به کراهته، ما میتونیم اختلاف کنیم یا بعضی از شروط و موانع که به نظر ما شرطیتی داشته و الان اتیان نمیشه یا مانعیت داره و الان داره اتیان میشه در این موارسی داریم اختلاف داریم ما با این شخص چهار کنیم؟ راه حل کنی میخواد برای هم این اختلافی چه در با مقادات چه در با معاملات طرف مقابل قائل به یک نحوه ایقاو و عقد و امثال این هاست ما قائل به یه نحوه دیگه اینا رو چطوری میشه همدش کرد؟ تنها راه حلش همین عمر دومه که بیایم قائل بشین به اینکه احکام ظاهریه دیگری در حکم در حق ما واقعا، نحافظه و هیچ اشکالی نداره همین که برای اون شب صحیح باشه ما حسار سه هست رو واقعا برش مترتب میکنیم لازم ایز اونم موافق نظر من باشه ما بیان بگردیم میریم کی در معاملات احکامش با احکام ما یکی بعد با اون معامله بکنیم این چیز اصلا غیر رسمی غیر ارتکازی و ایچه هم برش نیست که عقلی هم اینو قبول نمیکنه و هیچ لذا میشه دون اگر با هم را آمده کنن ولو اختلاف دارن تنها راهش همین مسئله دوم ام دومه که مسئله سیالی حساب میشه بتونیم اثبات کنیم که حکم ظاهری دیگری در حکم ما واقعا نافذه لذا در صفیه 233 نوشتیم محصل این نظریه دوم جمع بین احکام ظاهریه و احکام واقعیه جمع بین احکام واقعیه و احکام ظاهری در دو هیت بحث میشه یکی در اصول بحث میشه من بحثا که شیخ داره و تا تونسته متورجمش کرده جمع بین حکم ظاهری و حکم واقعی که اگر هم داروی داره قاضی داره پای داره، خویی داره هر کسی رسیده در رابطه با جمع بین حکم واقعی و حکم ظاهری نظر داده ما رو چطوری جمع بکنیم به خاطر شبهاتی که منسوب به ابن فوست قائل به که نمیشه چون حلال رو نمیشه حرامش کرد حرام نمیشه حلالش کرد یه شبهاتی براش بوده و منصوب به ایشونه مثل شبهه که ابن کمونه کم داری در فلسفه در اصول ما نداشتن بدون چیز بمونه اونها ما در کردن به احکام واقعی داریم در لوح محفوظ وقت ما بیاین اجتحاد بکنیم به یه نظری برسیم این اگه من خلاف واقع باشه نمیشه شبهاتی کرد که شبهات محسدش مسدود کردن راه اجتهاد فقه شیعی که نباید اجتهاد کنن نظریات عوض م وت روایات رو چیکار کنیم هر روایت یه چیز میگیم رو چطور جمع میکنیم لذا یک شبهه بوده هزار سال وقت همه رو گرفته هیچ هم برایش مترتب نمیشه اجتهاد هست روایات هست تعارض هست همه اینا رو ما داریم لوه محفوظی هم معلوم نیست واقعا چطور باشه این احتمان ما اونها باید بسازه نسازه ماها را آوردن مخطعه کردن آنما را آوردن مسبب باشه یکی ناشیگری ها نیست اونا تو همه چیز خطاب بکنن حالا اینجا رسید مسبب شدن اصلا تصویب مال ماها باید باشه اونا مخطعه ولی ما میگیم نه ما مخطعه هست یه گزاری برای ما میستن خوب نیست ولی خب موانی داره برای جمع بین احکام واقعی و احکام ظاهریه اولا مشهور قائلن به که ما احکام واقعیه داریم و احکام ظاهریه داریم و هر کدوم دو تا تفسیر داره کما فصله او مزفر در اصولش که خبید دو تا تفسیرش هم براش آورده که یه احکام واقعیه در لوحه محفوظ داریم یه احکام ظاهریه داریم که همین امارات و اصول عملیه. یعنی تمام وسائل و شیعه حکم ظاهریه و وسائل هرچی داره میگه در اصول عملیه همه ظاهریه احکام واقعیه همونهایی که در لوح محفوظه در اون مل که روز قیامت خدا میشینه این احکام ما رو به اون یکی یکی بزنه و بسنجمینه بزن چطور میشه اینا ها قائلن ولی این نظریه ی همه از اینکه، تمام این احکام گلان در وسائل هست در روایات ما اومده اینا خود این احکام واقعی هست برای چیز ظاهری باشه؟ ما غیر از این وظیفه نداریم ما بیاییم بگیم آقا اصول عملیه برای رفع تحییره ما که از حیرت در بیاییم و حکم شرعی نیست برایت حکم شرعی نیست استصحاب حکم شرعی نیست احتیاط حکم شرعی نیست تخیر حکم شرعی نیست ب مجتهد و مقلده و اتا هیچ حکمی نیست لذا در باب اصول عملیه قائل به عدم اجزا اند مطلمان بگن اگه استصاب کردیم و با این طهارت مستصاب نماز خوندیم بعد از ده سال فهمیدیم که درست نبوده هر استصحاب مختل بوده باید آده بود قائل به عدم اجزا در باب امارات علل قائل. قائل به ایزا و اگر کسی بخواد این تفصیل ها نباشه راحت بشه از این تفصیلات از باب ایزا مثلا ایزای عقلی که هم در کلمات سوری که کسی بخواد باب ایزا رو بخونه یک سال باید حتما وقت بذاره تا ایزا رو بپرمه ایزا امر استراری، ظاهری، از واقعی به هر دو سنخش اینا رو بخونه نداشته باشیم برگ میکنیم به اینکه که فرق بین اصول عملیه و امارات نیست چه فرقی هست بین کل شعین لکه علا با لا تاد لا تاد سرات الله من چه فرقی اینم این هم روایت هم نهایت چرا اسمینه بذاریم اصول عملیه و اسمونه بذاریم اماره و اینا چه تفکیکیه کل شعین میخواد بگه شما برای رف تهیوره یا میگه وظیفتو بگه حکم شرعی رو بگی کدومشه چرا بالای به حکم در باب اصول ما نیه نشودن میشین نظریه رو تعدیدش کرد تمام احکام گلان در دست ماست همشون احکام واقعی اند منتها احکام واقعی علاقمسعیه واقعی از بدی اون که همون در لوح محفوظ ما منکر لوح محفوظ نیستیم منتها لوح محفوظ مال زمانیه که امامی باشه محصولی باشه احکام اون بگیره به ماها برسه ولی وقتی نیست مشیت خدا تعلق گرفته به همین تکالیف فل جمعه اینا برای ما واقعیت داره واقعی سانوی حساب میشه علل قاعدن باید مجزی باشه و هیچ فرقی هم نداره نظر هر مستهری نافذ میشه و هر شخصی میتونه از یک راهی یکی از این احکام رو به دست بیاره و عمل بکنه مهم تعبد دیگه تعبد ما بنا متعبد به شریعت باشیم حالا حتماً بگردیم اون واقع واقع برسیم نه از ما نخواستم به خیلی از روات امام امر مستقیم داره که شما افتار کن و دیگری بیاد از شما استفتار کنه و نگفتن این از مجزی هست مجزی نیست العمري و ابنهو ثقتان قطم ما عد ديا عني فني يا خلاف نداره نمیدونم عدم ایزا نداره اینا جزء مکلای امامن فقها جزء مکلای امام حساب میشن هر چی بگن همون واقع عدم ایزا یعنی چی اصول عملیه رو بیا می برای رفع تغییر تحیر تعیری یعنی چی این چه بحثیه اگه استصاب بناس فقط برای رقع تحیل باشه این همه طول و تفصیل بر استصاب و دور انداختن نهجر با این متانتش به یک گوشه ای چه چجوری جمع میشه چقدر وقت تا صرف استصاب میشه با اینکه استصاب میگن خیلی جز جوامع کلمه و خیلی پساحت داره خوب تازه میشه یه مقداری از نحشب براغ نحشب براغه تمامش مثل اینه. حتی فسیلتر از اینه این فساعت نحشب براغه نداده لذا احکام همه واقعی هم علالقایدم همه مجزیه لذا نیاز به تقلید از اعلم هم نمیشه ما دنبال اعلم بگردیم مجتهد مطلب کسی که میتونه اجتهاد داشته باشه گیر به اعلم بدیم کل اعلم و امثال اینها اینها راههایی که نیاز بهش نیست ادله هم برش نداریم از هر مجتهد مطلبی میشه تقلیدیم خیلی ها قاعدم به این اعلمیت شد نیست برد نه که مجتهد مجده مطلبه تخصص داره میگه من تا ها یه مسئله رو من بگم برای تنویل اذهان که فرم میکنه یه موقع یکی یه شست سال وقت میذار استصاب میکنه اما حضر در پیه خوبصور امثالی اینو قبول داریم بعضی ها, ها بعضی اینطور نیستن چون مسلک های عدیده فقهی داریم مسلک های عدیده داریم یکی از مسلک های فقی خب معروف مال نجف یکیش مال قومه اینا نیاز به تفصیل, تفصیل داده تفصیل داره وقت از بحث ما خارج. یکی از روش ها که شما شاید نشنیده باشید روشی سامرهایی ده فوقه های سامرها بهش بودن یعنی الان شماها ها چقدر اشتراند دارید یک درصد دو درصد درزی همین منفی هسته <تصفيق> <تصفيق> یعنی برن رو باز که میبینی منفی <تصفيق> <تصفيق> ولی دارید همین شما حالا شما به عنوان با همین مقدار اجتماعی اگه به روش سامدرایی بخواید عمل بکنید میتونید فتحا بگید روش چ مسئله الغا میشه بعد فبول از کمه هیچ نفر سی نفسی, نفسی هم میشن شما منجا میشینید بعد مسئله تحق میشه مبانیش تحق میشه شما ذهنیت کامل نسبت به مبانی پیدا میکنید بعد از اینکه همه اطراف مسئله رو فیل فیل فهمیدید می میتونید بطا بدید چه اشکالی داره حتما باید ما اینا رو قبلا شست سال کنده باشیم نه فیل فیل در همین جلسه انسان استهزار فعلی پیدا میکنی روش خیلی خوبی هم هست برا پرورش طلبه هایی که دوره های تخصیصی که میذارن دوره تخصصی باید به این نه باشه نه به این نه که، ها و اشیاء رو پیرونن میکنن اونجا میخورن یه قسمت از حواشی رو میارن گلچینش میکنن بعد جاهای خوبشو مینذدن جاهای خرابشون میگن طلبوا میکنن یعنی اونش هم کوزینش هم تخصصی نیست میشه یک شخصی که در مراحل اول اجتهادم هست با اینقای نظریات مبانی ده نفر 20 نفر بشینن الان ما در شما خیام میکنید مثل ماها نشستن اینطوری کردن یا جلسات الاسات همینطورین رو رشد میده یکی از شاگردانش یه بار یه واقعیتی رو گفت که ایشون استاد منم بود بود که آی تبریزی رو ما تبریزیش کردیم یعنی ما خیلی باسواد بودیم اینشون اومد سوال جواب اینا رشد کرد به واقعیتیه نمیشه انکارش کرد الان خیلی از علمای فهول از حوزه که فاصله میدیرن میرن کنار همی زیادشون میرن می ولی اینا میان همیشه در حیل مساعدم میپرسن و راجعه میکنن و طالبی میشه بعد خود انسانم رشد میکنه الان اگه من بخوام بگم آقا من خودم روشت میکنم هیچ طلب هستی نداریم تو رو اگر اگه روشتی برا من برسه از طریقشون شماست. کسی این بکنه این کار واقعی یاد کرده ما بیایم بگیم نه اقا حافظه خودم بوده زحمت خودم بوده نه همه چهره یعنی یه درس نباشه هیچ حاصل نمیشه هیچ حاصل نمیشه ما ظاهرشو نگاه نکنیم مثلا ظاهرشو هم یه حرف میزنم شما میشینم در همین جلسات این علم حاصل میشه بر انسان چون اسبابش همینه این که من حافظم قدی باشه یا من زحمت بکشم دیگری زحمت نمیشه اصلا این به این چیزا من اعتقاد ندارم اعتقادم اینه صرف مباحثه موجب تولید علم میشه علمی خازه میشه درسم هم همینطور اونا که با نوار میخونن با سیبی بی میخونن یا هی استاد عوض میکنن با اینه اسباب ظاهریه استاد ضعیف اگه رفتی دیدی ضعیفه و برگشتن شما توهین حساب میشه بر نگرد اون همونجا بشین علم خدا بناسبه بده پرد میاییم شروع میکنه پشتری یه نفر این با با بلد نیست بگه ترجمه پرد میکنه امسان این هستن خوب نیست بناس علم خدا بده این اسباب ظاهریشه و هر درسی یه حسنی داره که ماها نمیدونیم همیشه محاسن بحثای خودمونو می بینیم محاسن کارهای خودمونو می بینیم و قافل از اسباب قیادی و معنوی که اونها مهمتر از اسباب مادی و ظاهریه این ظاهر قضیه است از اگر کسی نیتش این باشه که بیا بشینه و درس یاد بگیره به فقاهتی برسه یقینا میرسه انسان به هر چیزی برسه به خاط میرسه از, از چیز خوب بخواد بهش برسید یکی از روشهای خیلی خوب و مفید روش ساماندهی و مقبولانه هستن بحث نمیشه در این روشهای دقیق بحث نمیشه بله با بلوشیه که مفتی تحریم تنباکو و با اونها باید بودن نیزهای شیرازی و خیلی محسره و اونخواد ترمانی اگه شماها ضعفی دارید یقینام یه مقدار دارید به خاطر اینکه ما وقت کافی برای شما نمیزنیم ما باید اونقدر ممحض باشیم که روز 3-4 ساعت بعد از این جلس ها بشینن افراد بیان حرف بزنن و الا القاه در این طوری پشین بریم و تا فردا بست این همه چیزهایی که برای ما ناپخته بوده برای شما ناپخته میبونه یه مقدار کسی شما مبسترید یه مقدارش هم شما مبسترید و بقیهش هم یه قصور دیگه, دیگه. گرفتاری یا زیاده وقتها کم بعضی از موارد مشکلاتی بشینی یا وقت گرفته میشه ولی حتى المقدور سعی کنید یه جلساتی باشه همیشه مسائل مطرح بشه، اخا بشه با مبانیش تا روش کنید. و الا صرف القا از یک نفر و بریم مباحثه کنید مباحثه های همیشگی سوری اینا خیلی نتیجه نمیده. علاوه بره اون این داشتم میگفتم که جمع بین حکم ظاهری و حکم واقعی یک نظریه اصولی داره در مجالات اصول ولی این جمع بین حکم واقعی و حکم ظاهری که ما گفتیم این اون نیست. این فرق داره. جمع بین حکم واقعی و حکم ظاهری در دیده فقهی مذه نظره. این خیلی قاعده مهم که فرض شد شاء الله یه